اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و العصر به نام خداوند بخشنده بخشایشگر به عصر سوگند این الانسان که انسان ها همه در زیانند اللا الذي امان و امین و سالی حتی و دوسم و بحققی مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادهاند و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به شباییی و استقامت توصیه نموده اند.